خب تصغير ما ثالثه حرف ایله تصغیر کردن کلمهی که سفومین حرفش حرف ایله باشه مانند هوا سفومین حرفش حرف ایله هست هویون هدا هدیون عصا و مطار سومین حرفش الیف هست مطیرون مقال مقیل غزال غزیل امثلی گروه سفوم حسود واب هست حرف عله در شیو من حرفش حسید صبر صبیر جذوه ذجته امثله گروهی هارون از حرفش یا yeah. هست yeah حرف عله شب... است حبیبون کریم کریمون مدین مدین خب اگر شما در امثله گروه اول دقت کنید اه... حرف عله در هوا و هدا یا بوده در عصا اصل واو بوده در مطار و مقال و غزال در مطار یا بوده در مقال واو بوده در غزال که هم زائده در حسود و صبور و جذوه واغ هست در حبیب و کریم و مدین بیاید رو قائده اذا کان ثالث الاسم الاسمی زمانی که ثومین حرف اسمی علف باشد اصلیتا اصلی باشد ردت الى اصلی ها به اصلش برمیگرده. حرف اصلی باشه به چی برمیگرده؟ قبلا اینو خوندیم و امکان اصلها یا ان اما اگر اصلش باشه؟ یا باشه ادغمت فی یا تصغیر در یا تصغیر چی میشه؟ ادغام میشه مانند هویون هدیون اینجا یا چه هست اصلی است. و انکان وابن قلبت یا ان سمه اما اگر حرف واو بوده تبدیل بیا شده تبدیل یا میشه سپس ادغام میشه مانند اصا که میشه و متوجه شدید میگه فه انکان اصلها یا ان اگر اصلی ون اَلِف اگر اصل اون چی؟ یا بوده بله دریات دریات تصیری دارم در بله اگر اصلش یا بوده خود دریای تصیر میاد چی میشه مانند هویه هویه که این اه اه اه یا دریا چه شده از سرارن؟ یعنی ما طار نه، حالا فعلا روی این امثله هستیم. فعلا می‌گویید و انکان اصلها یا ان اگر اصلش یا بوده، اضافه داره دریا در در تصغیت چی ادغم میشه؟ ماده ما رمایه بله. و انکان واوا قلبت یا ان اگر واب بوده تبدیل به چی میشه؟ سیف ادغم میشه. بله. و انکان ثالثه الفا زائده اگر حرف سوم الف زائده باشه مانند غزال او وابن یا واب باشه قولی بتا یا ان این الیف و واب تبدیل به چی میشند بیا میشوند و ادغیمتا فی یا تسقیر و در یا ادغام میشوند مثلاً الیف غزال الیف چه هست زائده است. در حسود واب هم چه تبدیل بیا میشن و در یای تصغیر ادغام میشه. تبدیل به می و در یای تصغیر چون یک یا که خودشون ها الف تبدیل به شد در حسود وا تبدیل به یا شد. الان یک یا خودمون داریم. یکی از مال اسم تصغیره دیگه. فعل دیگه یا یا ی داریم. این یا درون یا ادغام میشه. میشه حسین سابور جزو هم چنینان ثرتنی داره کلمات بعدی چنینان. و این کان ثالث او یا اگر حرف سومی یا باشه مانند حبيب و كريم و مديان. آدغمات في یا تصغير در یا تصغير چی میشه؟ ادغام میشه مانند حبیب كريم مديان. پس پس سروران من. همه چیز داد اگر اصل بله حرف الله تصغیر ای که سومین حرفش الله باشه اگر اون حرف الله اصلش یا بوده خب چه بهتر یا در یا ادغام میشه اگر واو بوده که ما تبدیل بیایش میکنیم سپس ادغامش میکنیم اگر علف زایده بوده یا واب بوده باز هم تبدیل بیا میشه وا تبدیل در یای تصخیر میشه اگر بوده بله اگر از خودش یا بوده که بهتر اگر یا نبوده الف بوده یا واب بوده ما میایم تبدیل بیاشو کنیم شو همه امثله رو اینجوری هستن تبدیل بیا شدن تبدیل به چه شدن که وا باشه جو وا باشه چه الف تبدیل بیا میشن خب اگر اصلش یا بوده که به اصلش برمیگرده اگر یا هست خب این یا با یا میشه پس چرا همه رو میبینید حدی حدی اسیه حسید سبیر جزیه مطیر مقیل غزیل حبیب کریم مدین این زمانی است که سومین حرف کلمه حرف عله باشه در قاعده اون که اصلش یا بوده خب که اصلش جا بوده اما اونی که اصلش جا نبوده ما میایم تبدیل به چی می کنیم سید و سید میشه حسید بله بله این تمام شد ولی یک نقطه ای رو نمیخوام که درسش بدم اضافهش می کنم تذیل یک زیرنویسی رو اضافه کرده یک زیرنویسی رو اضافه کرده میگه در ابتدای باب ما گفتیم که تسغیر مخصوص اسمه های است. گفته بود که اسمای های مورب تسغیر میشند ولی از این قاعده ما استثناء داریم مثلا ما افعاله که مال تعجب هست یا مرکب مزید سیبوهی که مبنی بر کسره هست اینا رو عرب ها به بکار بردند مثلا ما احسن خلقهو ما احسن آ؟ یا مثلا سوي سوي بوي سوي بوي سوي بوي بکار رو به کار بردن این نقطه در ذهن باشه و همچنین از عرب شنیده شده که پنج از از اشاره رو تصغیرش اونو به کار بردن ذا تا زانی تانی اولائیح این اسمای اشاره بودن و یا تیا زانی تیانی او لیا اولیا، اولیا، بله، اولیا. بس اینا در حالی که مبنی الچیشونو به کار بردن، استفادشام. تصغیرشونو به کار بردن، بله. و همچنین شنیده شده است که 5 تا از اسمای موصوله رو هم تصغیرشونو به کار بردن. الضی الاتی الذانی اللاتانی که در تصغیرشون گفتن، در تصغیر الضی گفتن. الا زیا، الا تایا، الذانی، الا الَّذَيُّونَ الَّذَيِّينَ في حالة الرعب في حالة الرعب الَّذَيّونَ في حالة الناس بجر الَّذَيِّينَ هذه هي محسلة هي نقطة التي ذكرتها نقطة بعد كم... نقطة, نقطة بعدي لا يصغر من الأسماء ما كان على سيغة المصغر اون اسمایی که خودشون بر سیغه مسغره هستن دیگه تسغیر نمیشن مانند حضیفه جنینه کلیب شعب محیمن و مسایتیخ حضیفه رو دیید اسم تسغیر هایت دارن؟ آره اینا رو این نقطه رو در ذهنها داشته باشیم خدا را شکر امروز تمام تسغیر تمام شد و جای جا دارد که واقعا از صبر شما انسان تشکر بکنه.